دوستان، هیچ میدونید چرا پرستش ما اهمیت داره؟ آیا میدونین که چرا خدا این همه دستورات خاص برای ساختن خیمه پرستش داده؟ در درس امروز، معلم ما به ما کمک میکنه که به تراحی خیمه پرستش نگاهی بندازیم و به ما نشون میده که خدا میخواد قومش چطور اونو بپرستن و ما چطور میتونیم تصویر عیسی مسیح رو توسط مساله به کار گرفته به عنوان سمبولی در این خیمه ببینیم. دوستان به درس امروز گوش بدین به کلاس دیگری از دانشکده یک کتاب مقدس خوش آمدیم. با همدیگه به بررسی عهد قدیم ادامه میدیم با تمام کردن کتاب خروج حالا وقتشه که وارد کتاب لاویان بشیم. کسانی که کتاب مقدس رو می خونن کتاب لاویان رو به عنوان کتاب خیلی سختی میدونند همونطور که قبلا گفتیم خیلی ها وقتی شروع به خوندن کتاب مقدس میکنن خیلی خوب پیش میرن تا اینکه به یک سوم پایانی کتاب خروج میرسن که درباره مشخصات ساختمان خیمه در بیابان هست اونجا مردم سرعتشون کم میشه اما وقتی که به کتاب لاویان میرسن واقعا دیگه از درک کتاب مقدس باز میمونند و دست میکشه زنی که زندگی خیلی مرفهی داشت یک ایماندار برجسته شد او به ایمانداران پیشنهاد میکرد وقتی سعی می کنید به کسی نزدیک بشید که مثل من که زمان قبل از ایمانم بوده بابها و آیات کتاب مقدس رو برای اونها بیان نکنید. چون برای مردم سکولار دنیا این مفهومی نداره. او گفت من الان هشت ساله که ایماندار هستم و هنوز هم کتاب لاویان رو درک نکردم. کلمه لاویان یک اسم نیست. معنی اون مربوط به لاویها هست. لاویها البته کاهنان بودند. برای اینکه کتاب لاویان رو بفهمید، ضروری هست که اون خیمه کوچک رو در بیابان به همون اسم بشناسید. همونطور که قبلا گفتم کلمه خیمه پرستش به معنی چادر هست. اون خیمه کوچکی در بیابان بود که خدا به موسی دستور ساختنش رو داده بود. اون یک خیمه پرستش بود. بعدها معبد سلیمان که بسیار ماهرانه ساخته شده بود با همون ابعاد خیمه پرستش ساخته شد. همون الگوی پرستش که در خیمه پرستش به کار رفته بود در معبد سلیمان هم اجرا میشد. در معابد یهودی تا سه هزار سال و در بسیاری از کلیساهای امروز ما هم فرم پرستش بر مبنای چیزی است که قوم خدا از موسی در خیمه پرستش آموخته بودند. یکی از مهمترین چیزهایی که در مورد خیمه پرستش هست این بود که باید در وسط اردوگاه ساخته می شد. وقتی به کتاب اعداد برسیم خواهیم دید که وقتی مردم از مصر حرکت کردند و از بیابان عبور کردن اونها انبوهی از مردم سازبان یافته بودند. اونها مانند یکی ای از این مسابقات بزرگ ماراتون با هزاران دونده در بیابان نبودند. اونها بیشتر شبیه یک لشکر نظامی منسجم بودند. دوازده طایفه بودند و هر طایفه موقعیتی داشت. اونها در بیابان به شکل هماهنگ حرکت می‌کردند اما در وسط اردوگاه این خیمه کوچک پرستش در بیابان قرار داشت. حقیقتی که خیمه پرستش باید در وسط کمپ قرار می گرفت چیزی را بیان میکرد. اولین فرمان میگه خدا باید اول باشه کتاب مقدس به ما میآموزه که خدا باید در مرکز باشه در مرکز زندگی همه ما این با قرار گرفتن خیمه پرستش در مرکز اردوگاه مثال زده شده شاید مهمترین چیزی که ما میتونیم درباره خیمه پرستش مشاهده کنیم مهمترین چیز درباره واقعیت حقیقت حضور خدا بود حضور الهی خدا عملا در آن خیمه کوچک در مرکز اردوگاه ساکن بود حضور خدا اون رو مقدس و خاص گردانید گفته شده که وقتی موسی احداث اون خیمه کوچک رو به پایان رسون، حضور و جلال خدا آمد و اون خیمه کوچک رو پر کرد ابری بر فراز اون خیمه کوچک پایین اومد و اون سمبال چیزی هست که مسح روح خدا بر شما و پر شدن شما از روح خدا رو نشون میده حضور خدا در معبد سلیمان هم وقتی با همون الگو ساخته شد با چنان قوتی قرار گرفت که کاهنان مجبور به ترک معبد شدند. اونها نتونستن در معبد بمونند که مراسم رو به جا بیارن چون جلال خدا معبد رو پر کرده بود. خیمه پرستش در همون مرکز اردوگاه قرار داشت اگر گناهکاری در بین هر کدام از دوازده تایفه میخواست به گناهش اعتراف کنه و رابطهش با خدا درست بشه باید به سمت خیمه در وسط اردوگاه میرفت. ابر حضور مرئی خدا بر بالای خیمه پرستش بود و این ابر اونها رو هدایت میکرد. وقتی ابر حرکت میکرد، اونها حرکت میکردند وقتی ابر می اونها هم می ایستادند ابر اونها رو هدایت میکرد اما مهمترین چیز در رابطه با خیمه پرستش این حقیقت بود که خدا عملا اونجا حضور داشت همین که اونها به خیمه پرستش نزدیک میشدن به خدا نزدیک شدند. اونها در خیمه پرستش برای طلب بخشش به خدا نزدیک شدند. اونها برای پرستش او نزدیک شدند و برای گرفتن هدایت میخوام حالا از نزدیک نگاهی به خیمه پرستش بندازیم این خیمه پرستش حساری در اطرافش داشت که با کرباس پوشانیده شده بود قبلا هم گفتیم با دیدن اون کسی تحت تاثیر قرار نمی گرفت داخل حسار حیات بود با وقتی معبد سلیمان ساخته شد این موحوته پنجونیم هکتار مساحت داشت موحوته معبد سلیمان همونی بود که عیسی اونجا را از حضور کبوترفروشان و پاک پاکسازی کرد اما حیات این خیمه پرستش خیلی بزرگ نبود حتی 14 متر ارز نداشت اگر گناهکاری می‌خواست از خدا طلب بخشش بکنه به خیمه پرستش می‌رفت و در اونجا کاهنی در جلوی دروازه حیات او را ملاقات می‌کرد در خیمه پرستش وسایل و ابزاری بود که خیلی مهم بودند اولین وسیله خیمه پرستش مذبه برنجی بود اون مثل یک منقل مصنوعی بزرگ بود اون خیلی مقدس بود در تمام مدت آتش مذبح روشن بود و منظور از این مزبه برنجی این بود که حیوانی که شخص گناهکار با خود می آورد بر طبق آموزه هایی که کتاب لاویان داده بر روی اون زپ می شود. بعد حیوان بر روی مذبح قرار می گرفت، گناهکار بر در محوطه می و هرگز به داخل خیمه پرستش نمی رفت. او وارد قسمت درونی جایی که جلال خدا در اون حضور داشت نمی شد. کاهن به جای او وارد خیمه می شد. ابتدا کاهن حیوان قربانی رو در روی مذبح قرار می داد در حالی که دود قربانی به آسمان به طرف خدا می رفت، کاهن به سمت وسیله دیگر که به آن حوز می پیش می رفت. اون شبیه تشت بزرگی بود و البته خیلی زیبا بود. این جایی بود که کاهن خودش رو با تشریفاتی به عوض گناهکار که هنوز بر در حیات بود تمیز می کرد. خیمه پرستش به دو قسمت تقسیم شده بود. یک قسمت بیرونی بود که به اون مکان مقدس می پرده بسیار زخیم این مکان مقدس را از قسمت داخلی که به آن قدس القداس میگفتند جدا میکرد. حضور خدا در قدس القداس بود. همین که کاهن وارد خیمه پرستش میشد و شروع میکرد به سمت وسایل و اساسی مختلف داخل خیمه میرفت با این کارو به خدا نزدیک میشد که در آنجا ساکن بود. در خیمه پرستش چهار تکه اساسی وجود داشت. بعد از اینکه کاهن با تشریفات خودش رو تمیز میکرد، به مکان مقدس وارد میشد. در سمت چپ او شمدان وجود داشت، این شمدان بسیار مهم بود. اون نشانگر مکاشفه ای بود که خدا وقتی کلامش را به اونها داد به قوم خودش داده بود. البته اگر خدا به اونها کلامش رو نمیداد هیچ کدام از جزئیات این عمل بر اونها معلوم نمیشد. بعد کاهن خدا رو در مقابل شمدان برای مکاشفه ای که به گناهکار داده بود شکر می کرد. در این حال گناهکار هنوز بر در حیات ایستاده بود. این مکاشفه به گناهکار نشان داده بود که چطور نجات پیدا کنه و چطور به دوستی با خدا دست پیدا کنه در سمت راست در مکان مقدس خان نان تقدمه قرار داشت خان سمبولی بود از یاداوری من آسمانی که خدا میخواست به یاد قومش بیاره برای او امکان داره که نان مورد نیاز هر روز ما رو عطا کنه خدا میتونه دستش رو باز کنه و نیاز هر موجود زندهی رو براورده کنه او میتونه گوشت ما رو در فصلش به ما بده این منظور از سفره نان تقدمه بود جلوتر در دست راست روبروی حوض مذبح بخور قرار داشت که راه منتهی به قدس الاقداس را مسدود میکرد کاهن باید دعا میکرد دعایی برای شفاعت گناهکاری که هنوز در بیرون ایستاده بود کاهن همینقدر میتونست بره و بعد باز میگشت و گناهکار دیگر رو ملاقات میکرد و دوباره همون آینها را بهجا میآورد گناهکار بیشتر از اون پیش نمیرفت همینکه قربانیش ضبت میشد و تقدیم میشد او بیرون منتظر مینستاد تا کاهن برای او شفاعت کنه. سالی یک بار تمام قوم دور خیمه پرستش اجتماع می‌کردند. در این فرصت کاهن اعظم از هجاب میگذشت و وارد قدس و لغداس می می‌شد و خون قربانی رو برای گناهان تمام قوم تقدیم می‌کرد. این فقط سالی یک بار در روز خاص انجام می‌شد. به طور روزمره کاهن فقط تا مقابل مذبح بخور می‌رفت و اونجا برای گناکارانی که هدیه آورده بودند شفاعت می‌کرد. حالا میخوام نگاهی از نزدیک به این اساسیه بندازید. تمامی وسایل داخل خیمه پرستش در بیابان دستگیره داشتن. این لازم بود به خاطر اینکه اونها در بیابان مانند ارتشی بزرگ پیش میرفتند و همه این اساسیه را با خودشون حمل میکردن. در لغا باب 24 رایه 27 عیسی به شاگردانش میگه که موسا و تمامی انبیا در عهد قدیم به او اشاره داشتند مذبح برنجی در واقع انجیل عهد جدید را معرفی میکنه وقتی به این خیمه کوچکه که پرستش نگاه میکنیم باید بگیم که هر اساسیه در این خیمه پرستش تصویری از عیسی مسیح بود کل خیمه پرستش تصویری از عیسی مسیح بود و هر وسیله در اون تصویری از عیسی مسیح بود وقتی عیسی گفت موسی راجع به من نوشت او یقینا راجع به خیمه پرستش صحبت میکرد مذبح برنجی با ما از مرگ عیسی مسیح صحبت میکنه تمام حیواناتی که بر روی مذبه برنجی قربانی شدند و تمامی حیواناتی که قربانی می وقتی عیسی مسیح بر روی صلیب مرد به کمال رسیدند. پس مذبه برنجی با ما از صلیب ایسای مسیح صحبت می کنه. این مذبه برنجی به ما میگه شما نمی تونید بدون یک قربانی به خدای قدوس نزدیک بشید. بدون ریختن خون هیچ آمرزش گناهی نیست. مذبه برنجی به ما میگه که خدا قدوسه و عادله خدا از ما میخواد که عادل و مقدس باشیم خدا هر چیزی رو که عادل و مقدس نیست محکوم میکنه خدا میدونه که شما در یک میلیون سال هم نمیتونید اونقدر عادل و مقدس بشید که خودتون رو نجات بدید پس خدا باید به شکل بره قربانی خدا به دنیا میامد و قربانی نهایی خودش رو تقدیم میکرد تا اینکه منو و شما بتونیم توسط او بر حسب عدالتش عادل شمرده بشیم این کاریه که خدا کرده چیزی که خدا از من و شما انتظار داره اینه که به این ایمان بیاریم مذبح برنجی با ما از این حرف میزنه اون به ما میگه خدا چی هست خدا چی میخواد چی رو محکوم میکنه چی رو میدونه چیکار کرده و چیکار میخواد بکنه تمام این پیغام در مذبح برنجی نهفته است به طور خلاصه مذبح برنجی به ما نشون میده که انسان گناکار نمیتونه بدون قربانی به خدای قدوس نزدیک بشه لازمه این قربانی شدن عیسی مسیح بر صلیب بود وسیله ای که حزنا نامیده میشه جایی که کاهن با تشریفاتی خودش رو قبل از ورود به مکان مقدس تمیز میکنه به ما میگه که کتاب مقدس در بسیاری از جاها چی میگه کیست که به کوه خداوند براید آنکه پاک دست و صاف دل باشد دوستی با خدا مقصد نهایی در خیمه پرستش است هر چیزی در راستای اون حرکت میکنه دوستی با خدا اغلب در کتاب مقدس به یک غذا خوردن تشبیه شده. اینک من بر در ایستاده در را میکوبم اگر کسی صدای مرا بشنود و در را بگشاید من داخل می شوم و با او هم سفره میشوم. عیسی جوری راجع به دوستی با خدا صحبت میکنه که گویی از یک شام بزرگ صحبت میکنه. او میگه خدا سعی داره مردم رو به این شام دعوت کنه. مردم همه هایی میارن یا کار دارن یا ازدواج میکنن یا مشغولند. هر کسی ای میاره اونها نمیخوان به این زیافت بیان دوستی با خدا به مانند یک زیافت توصیف شده و حوز به ما چیزی رو میگه که مادرمون وقتی بچه بودیم میگفت قبل از اینکه سر میز شام بیای دستاتو بشور و خودت رو تمیز کن. قبل از اینکه بیای و با خدا دوستی بکنی باید شستشو بکنی. باید تمیز باشی این پیغام حوز بود در اتاق بالایی عیسی داشت پاهای رسولان رو میشست نوبت پتروس شد او پاهای حدود شش نفر رو شسته بود و میدونید دونید که او با مخالفت پتروس مواجه شد یقینا پتروس گفت آیا پاهای مرا خواهی شست؟ خداوند شاید گفته خب پتروس درست حد سدی من پای شش نفر رو به نوبت شستم و تو نفر بعدی هستی پتروس به او گفت پاهای مرا هرگز نخواهی شست اما خداوند خیلی صبور و مهربان بود مکالمه طولانی با پتروس کرد او به پتروس گفت پتروس کاری رو که الان میکنم تو درک نمی‌کنی اما بعدها خواهی فهمید پتروس به او گفت پاهای من را هرگز نخواهی شست و خداوند گفت اگر پاهای تو را نشویم سهمی با من نخواهی داشت این حقیقت بزرگیه اگه من تو را نشویم ابداً با من سهمی نخواهی داشت با من دوستی نخواهی داشت این چیزیه که او میگه وقتی پتروس این رو شنید گفت سرورم نه تنها پاهایم بلکه دستها و سرم را نیز بشوی اگر این چیزی که لازمه دوستی با تو هست پس من استهمام میکنم بعد خداوند درس بزرگی داد او گفت پتروس آنکه استهمام کرده سراپا پاکیزه است و به شستن نیاز ندارد مگر پاهایش باری شما پاکید اما نه همه چیزی که او داشت میگفت این بود که چیزی به نام حمام تولد تازه هست. با داشتن حمام تولد تازه وقتی ما در این دنیا راه میریم پاهای ما کثیف میشه پس نیاز هست که مرتبا تمیز بشه کتاب مقدس با ما از شستشو با کلام خدا صحبت میکنه کلام خدا هر روز ما رو پاک میکنه یا به عبارتی با خواندن و تعمل در کلام خدا و اجازه دادن به اون که زندگی ما را رو هر روزه با قدرتش عوض بکنه پاک میشیم این چیزی که کاهن به صورت سمبولیک وقتی که وارد حوض میشه و تشریفات تمیز شدن رو به جای کار به جامیاره انجام میده کاهن بعد وارد خیمه پرستش میشه و نزد شمدان میاد وقتی به این اساسی نگاه میکنیم لازمه که همینطور ببینیم چطور اونها سمبولهای نقشه خدا برای نجات هستن سمبولهای ایسای مسیح بعدها وقتی که در عهد جدید میخونیم در کتاب ابرانیان ما معنی این سمبولها رو خواهیم آموخت وقتی که کاهن در مقابل این شمدان طلا قرار میگیره و اقرار میکنه که خدا سرچشمه این کتابی است که ما در این دوره بررسی میکنیم او اقرار میکنه که کلام خدا چراغ راه نماست او پرستش میکنه و خدا رو شکر میکنه که به اون گناهکاری که دم دروازه ایستاده مکاشفه داده که چطور میتونه نجات پیدا کنه و به خدای قدوس در پرستش نزدیک بشه پولس رسول به مباشر اسرار خدا بودن اشاره میکنه این مسئولیت بزرگیه پولس در عهد جدید گفته ایمان از شنیدن کلام خدا میاد وقتی خدا کلامش رو به شما میده این مسئولیت بزرگیه در درخت جدید گفته ایمان از شنیدن کلام خدا میاد ایمان از کلام خدا حاصل میشه. به لحاظ اون کلمه ایمان منبع نجات ما هست به اعتقاد من وقتی که کاهن مقابل شمدان میسته او خدا رو شکر میکنه که قوم خودش رو در تاریکی رها نکرده. او به قوم خودش مکاشفه ای از حقیقت خودش داده و به اونها کلام مقدس خودش رو داده. این همینطور نشانه ای از عیسی هست زیرا او کلام و نور جهان هست. و جدای از او ما انسان ها در تاریکی و بدون کلام حقیقت میمانیم بعدها بعدها در عهد جدید عسا میگه من نور جهانم همونطور که قبلا اشاره کردیم کاهن بعدا به سمت میز نان تقدمه مییره بر روی میز نان تقدمه نانی بود که سمبلی از این حقیقته که خدا نیازهای قوم خودش رو تدارک میبینه و فراهم میکنه در کتاب خروج و در کتاب اعداد ما میبینیم که او این رو بارها و بارها به صورت خارق العاده انجام میده او به صورت العاده نیازهای روزانه او رو رفت میکنه. من باور نمیکنم که خدا هرگز بخواد که ما از دیدن این حقیقت قافل بشیم که او تنها منبع ما شماست. اونها مثل این میز نان تقدمه رو در تمام معابد کوچکشون در ایام ایسا داشتن. این مثالی است از اینکه که چگونه رهبران مذهبی دیدشون را از هدف خدا برای شریعت از دست دادن. یک بار وقتی عیسی داشت با رهبران مذهبی درباره هدف و منظور و روح شریعت گفتگو میکرد، او داود رو مثال زد. وقتی به داستان سمویل برسیم این رو خواهیم دید. داوود داشت از دست شاول فرار میکرد، او و مردانش در گرسنگی بودند. او معبدی رو در شهر کوچکی میشناخت و میدونست که اون معبد خانه نان تقدمه داره. داوود به داخل این معبد کوچک رفت و نان تقدمه را طلب نمود. عیسی این کار داوود رو ستوده، فریسیان از این وحشت زده شده بودند اما عیسی اینجا حق را به داوود داده چون هدف از خان نان تقدمه نشان دادن این حقیقت بود که خدا تمامی نیازهای روزمره و نان روزانه شما را رو فراهم میکنه. فریسیان و علمای دین شریعتی تر از اون بودند که همین قانون رو به عنوان سمبلی از حقیقت قدرت خدا برای تدارک قومش بپذیرند و این قانون را مانعی برای برداشتن نان برای کسی که گرست نبود تعبیر می کردن. خوردن این نان تقدمه فقط برای کاهنان مشروع بود. داوود از اونا خواست که این قانون رو بشکنن. چون روح اون قانون این بود که خدا برای قومش نان روزانه اونا رو فراهم می کنه. و مردانش نیاز به نان روزانه شون داشتن. این چیزی که خان نان تقدمه به تصویر می کشه. وقتی کاهن مقابل میز نان تقدمه می ایستاد، خدا رو می و شوق گذاری می کرد که خدا نان روزانه اونها رو فراهم کرده. اینجا باز هم تصویر عیسی مسیح رو میبینیم همون همونطور که عیسی در عهد جدید گفته من نان حیات هستم و وعده داده که همه‌ی نیازهای ما رو برآورده کنه. وقتی کاهن در مقابل مذبح بخور میستاد برای گناهکاری که بر در حیات ایستاده بود دعا میکرد. وقتی کاهن اونجا میستاد و برای گناهکار شفاعت می کرد او تصویری از عیسی مسیح بود که در مقابل پدر دعا و شفاعت میکنه کاهن تصویری از عیسی مسیح بود چون که عیسی مسیح کاهن اعظم ماست که برای ما نزد خدای پدر شفاعت میکنه در باب 17 یوحنا ما دعای خداوند رو داریم دعایی که در متا شش میبینیم و اغلب به اون دعای خداوند گفته میشه باید دعای شاگردان گفته بشه چون خداوند هرگز چنین دعایی نکرده بلکه به شاگردان یاد داده که اونطور دعا کنند دعای خداوند در یوحنا 17 آمده جایی که عیسی خودش دعا میکنه کتاب مقدس به ما این اینطور آموخته که عیسی مسیح کاهن اعظم ماست و همواره برای ما دعا میکنه و ما رو شفاعت میکنه. یک کاهن به جای شخص گناهکار یا مردم گناهکار به حضور خدا میرفت. یک نبی از حضور خدا با کلام خدا به سوی مردم میآمد. اما وظیفه کاهن این بود که از طرف مردم و به نیابت از مردم به حضور خدا میرفت. اوج خدمت کاهن زمانی بود که در مقابل مذبح بخور می ایستاد. و برای مردم و اشخاص گناهکار شفاعت می کرد گفتیم که این خیمه اساساً به دو بخش مجزا تقسیم شده بود بخش اول خیمه مکان مقدس بود بخش دوم قدس القداس نامیده می شد. در قدس الاغداس فقط یک تکه اساسیه بود که مهمترین وسیله موجود در اون خیمه پرستش بود و اون تابوت عهد بود این وسیله مهم سمبولی بود از حضور الهی خدا در مکان قدس الاغداس و در اون تابوت عهد. وقتی به کتاب یوشع برسیم خواهیم دید که قوم اسرائیل این تابوت رو به نزدیک دیوار ها آوردند این وسیله مهم سمبولی بود از حضور الهی خدا در مکان قدس القداس و, و در اون تابوت عهد وقتی به کتاب یوشع برسیم خواهیم دید که قوم اسرائیل این تابوت رو به نزدیک دیوار وردن. آوردند ها همیشه تابوت عهد رو با خود به جنگ ها می می‌بردند چون قدرت خدا در این تابوت بود به صورت کاربردی ما می بینیم. نه تنها این تابوت نشانه از حضور و قدرت خدا بود، بلکه سمبلی از اشتیاق خدا برای دوستی با قوم خود بود. همینطور می می‌بینیم که عیسی نیز مظهر آشکار اشتیاق خدا برای دوستی با ما و راه فراهم کنندگی او هست. در عهد جدید ما چشماندازهای بزرگی از این خیمه پرستش داریم. بخش‌های زیادی از کتاب مقدس هستند که تا شما این خیمه پرستش را به خوبی نشناسید و درک نکنید، نخواهید فهمید. بخشی زیادی از عهد قدیم و عهد جدید هستند که درکش برای شما دشوار خواهد بود مگر اینکه قبلا خیمه پرستش رو درک کرده باشید مهمتر از همه شما واقعا انجیل مسیح رو درک نخواهید کرد مگر اینکه قبلا خیمه پرستش رو به خوبی درک کنید و معنی وسایل درون اون معبد رو بفهمید حقیقت بزرگ دیگه در عهد جدید هست که در این خیمه پرستش سمبل اون رو می‌بینیم اون یکی از حقایق تاثیر گذار در عهد جدید هست. عهد جدید میگه آیا میدانید که بدنهای شما معبد خدای زنده هست و او در شما زندگی میکنه؟ این حقیقت نیروی محرکهی بود که با قوم اسرائیل در میان گذاشته شد چون اونا همیشه این دیدگاه رو داشتند که حضور الهی خدا در تابوت عهد ساکن است بعدها وقتی معبد سلیمان ساخته شد حضور الهی خدا آمد و در تابوت عهد در معبد ساکن شد. وقتی که بابلی ها قوم رو به اسارت بردند و دانیال در بابل که بعدها پارس یا ایران فعلی خوانده شد اسیر بود، او همیشه رو به اورشلیم دعا میکرد. چرا؟ چون او ایمان داشت که حضور خدا در صندوق عهد در اورشلیم قرار داره. هزقیال و انبیا برای قوم خدا در اسارت موعظه میکردند. اونها مشکل وحشتناکی داشتند. اونها درباره خدای موعظه میکردند که باور داشتند هنوز در اورشلیم بود چون حضور الهی او در تابوت عهد در معبد ساکن بود. حقیقت تأثیر گذار عهد جدید این بود که اکنون بدنهای ما معبد یا ظرفی هست که عملا حضور خدا در اون زندگی میکنه. من شبانی رو میشناختم که از دویدن خیلی لذت می برد و میدوید که سالم بمونه و اغلب بچه هاش میگفت اگر کسی در حین دویدن و یا تناب زدن من تلفن بزنه، به جای اینکه توضیح بدید و بگید شبان مشغول ورزش کردنه بگید مشغول تعمیرات معبد هست. منظور او از این چی بود که داره معبد رو تعمیر میکنه؟ البته منظور او از تعمیر معبد نگهداری و مرمت بدن خودش بود که معبد خدا هست. بعدها یکی از دوستانش رو در پیست دو دید که مشغول دویدن و پشت گرمکنش نوشته معبد در دست تعمیر است. این شبان بعدها براش فرصتی پیش اومد که به اسرائیل سفر کنه و توی آسانسور هتل داوود پادشاه پیراهن ورزشی خودش رو پوشیده بود و اونجا عده یهودی بودند که اونشقاف شدن بفهمند منظور از نوشته پشت پیراهنش چیه اونا فکر کردن که او برای معبد کار میکنه یا چیزی مثل اون اونا فهمیدن که او غیر یهودیه و این اونا رو بیشتر گیج کرد منظور او از این نوشته این بود که بدنهای ما معبد هست و ما مسئولیم که از اون نگهداری کنیم جدا این حقیقت تکان در عهد جدید هست. اگه شما تصمیم گرفتید عیسی مسیح رو پیروی کنید و شاگرد او باشید بدنهای شما معبد روح القدسه بدنهای شما معبد خدای زنده است اما در زمانی که قوم در بیابان سرگردان بودند، معبد یا ظرف حقیقی که حضور خدا در اون ساکن بود تابوت عهد بود از این سبب تابوت عهد مهمترین وسیله موجود در قیمه پرستش بود چیزهای مقدسی در اون تابوت عهد قرار داشت دلوهه سنگی در اون تابوت قرار داشت که بر روی اونها ده فرمان نوشته شده بود ظرفی پر از منن آسمانی در اون, اون قرار داشت که می‌خواستند اون رو حفظ کنند. اصایه هارون در آن قرار داشت که به طور موجز آصایی شکوفه کرده بود. اونها اصا رو در تابوت نگه داشته بودن. مشاهده انجیل احت جدید رو در این خیمه از نظر دور نکنید. وسایل درون خیمه ترتیب و شکلی از یک صلیب هست و اون تصادفی نبوده. نمادهای زیبا بدون منظور ترراحی نشده بود. مشاهده ی عیسی را در سراسر این خیمه پرستش از نظر دور نکنید از لحظهی که شروع به نزدیک شدن به خدا میکنید از مذبه برنجی به طرف حوض و بعد به طرف مذبح بخور میرید و در همه این وسایل ما نمادی از صلیب عیسی مسیح رو میبینیم همونطور که قبلا یاد گرفتیم در ایام فسح مالیدن خون بر باهوی درها همین رو برای ما به تصویر میکشه همینطور رختهای کاهنان هم بسیار مهم بودند هر چیزی در خیمهٔ پرستش مهم بود من وارد جزئیات نمیشم چون ما بررسی اجمالی می‌کنیم اما این مثالی از این حقیقته که در کتاب مکاشفه و در انجیل یوحنا و در سایر جاها شما یاد گرفتید که یهودیان زبانی سمبولیک مثل زبان علائم رو به کار می‌بردن در کتاب مکاشفه گفته شده که دری به سوی آسمان گشوده میشه و وقتی اون در باز میشه شما کسی رو میبینید که بر تخت نشسته ظاهر آن تخت نشین مثل سنگ یشم و عقیق است و دور تا دور تخت رو رنگین کمانی زمردگون فرا گرفته این کلمات برای یک غیر یهودی یا کسی که عهد قدیم رو نمیدونه هیچ معنایی نداره هر سمبولی در مکاشفه یک سمبل کتاب مقدسیه این یکی از که رمز کتاب مکاشفه رو باز میکنه و کمک میکنه تا شخص کتاب مکاشفه رو به خوبی درک بکنه مکاشفه کتابیه که مثل یک پیغام رمزی برای قوم خدا نوشته شده یکی از کلیدهایی که اون رمزها رو باز می‌کنه اینه که هر سمبلی در کتاب مکاشفه سمبلی کتاب مقدسیه برای مثال جواهراتی که در مکاشفه چهار نوشته شده در ایفود کاهن اعظم در خیمه پرستش نصب شده اون جواهرات دوازده طایفه اسرائیل رو تداعی می‌کنه اگه به اون سنگ هایی که در مکاشفه اشاره شده نگاه کنید یکی از اونها اشاره به طایفه روبین هست یکی اشاره به تایفه بنیامین داره و یکی اشاره به تایفه یهودا می‌کنه این اسامی مثل روبین، بنیامین و یهودا چیزی رو تداعی میکنند. روبین یعنی اینک پسر من، بنیامین یعنی پسر دست راست من و یهودا یعنی ستایش یا پرستش. پس چیزی که در مکاشفه چهار به ما گفته شده اینه. اینک پسر من، پسر دست راست من او را بپرستید. هر چیزی در آسمان برابر تخت زانو میزنه و او را پرسته. این پیغام اون خیمه پرستش است. عیسی گفته موسا درباره من نوشته. این فقط مثال کوچکی هست از اینکه چطور موسی از او نوشته. هر چیزی در اون خیمه پرستش درباره عیسی هست اون نور جهان هست اون نان حیات هست او کسیه که در مذبح برنجی به تصویر کشیده شده قربانی بی ایب. او کسیه که میاد و ما رو در حوض پاک میکنه. این واقعا انجیل عیسی مسیح که شما در اون خیمه پرستش میبینید. در کوشش خیمه پرستش تنها راهیه که میتونید امیدوار باشید کتاب لاویان رو بفهمید چون کتاب لاویان کتاب راهنمایی هست که کاهن برای انجام وظیفه در خیمه پرستش به کار یا به عبارت امروزی شرح وظایف کاهنین در خیمه بود ملاحظه این که هر وسیله و اسبابی در خیمه برای قوم خدا چه مفهومی داره به ما کمک میکنه که در کاربرد عملی به این فکر کنیم که اون وسیله ها و اسباب ها برای من و شما چه مفهومی داره؟ و وقتی میخوایم به خدای قدوس نزدیک بشیم در پرستش های جمعی، فردی و شخصی چطور او رو بپرستیم این عیسی رو میشناسید؟ یادتون باشه عهد قدیم به ما یاد میده که او خواهد آمد و ما در عهد جدید میبینیم که به ما یاد میده او آمد او میگه آیا حس میکنید که در تاریکی هستید؟ من نور جهانم عیسی میگه آیا به لحاظ روحانی هستید؟ من نان حیات هستم و میخوام که در زندگی شما ساکن بشم و بدنتون رو خیمه خودم بکنه. خب عزیزان وقت ما به پایان رسیده در جلسه بعدی به کتاب لاویان خواهیم پرداخت و به شناخت بهتری از نقش کاهن در ایفای وظایفش در خیمه پرستش دست خواهیم یافت. خدا تصویری از ایسای مسیح در خیمه پرستش تیه کرده و به ما نشون داده که اون میخواد چطور به اون نزدیک بشیم و چطور اونو بپرستیم؟ ما در درس امروز چیزای زیادی رو مرور کردیم، اما این یک بررسی سطحی از حقایق خیمه پرستش بود. دایما اینه که این پیغام ها نه تنها کمک کنه شما کلام خدا رو بهتر درک کنین، بلکه عتشی در شما ایجاد کنه که تمام کلام اون رو بخونین، وارد کلام اون بشین و اجازه بدین کلام اون در شما نفوذ کنه و شما رو متحول کنه عزیزان تا برنامه بعدی دعای ما اینه که خداوند عیسی مسیح در شما ساکن بشه و شما رو پر کنه و خدا پدر آسمانی ما که فیض او ما را کافیست در هر مرحله از سفر ایمانیتون که هستین شما رو ملاقات کنه و به شما امید بده که در این هفته با چالشهای پیش رو مواجه بشین و شما رو هر روزه تقویت کنه.